بعد از این دست من و دامن آن سر بلند که به بالای چمان از بن و بیخم برکند حاجت مطرب و می نیست تو برغه بکشا که به رقصا بردم آتش رویت شد سپند هیچ روی نشود آینه هجله بخت مگران روی که مالند در آن سمه سمند گفتم اسرار غمت هر چه بود گو باش سبر از این بیش ندارم چه کنم تا کی و چند مکش آن آهوی مشکین مرا ای سیاد شرم از آن چشم سیخ و مبندش به کمند من خاکی که از این در نتوانم برخواست از کجا بوسه زنم بر لب آن قصر بلند باز مستان دل از آن گیسوی مشکین آفز زان که دیوانه همان به که بود بند.